امام حسین داره به من و شما میگه این مردمی که دم از دین زدن و به نام دین با من حسین در افتادن اینا دین که ندارن هیچی معاد رو باور ندارن هیچی یک جو غیرت انسانی هم ندارن اینو داره بیان میکنه یا شیعت آل عبی صفیان علم یکن لکم دینون دین ندارید و کنتم لا تخافون المعاد از آخرتم حساب نمیبرید و کنو احرارا فی دنیا کم. پس اون یه ذر شرافت انسانی این دنیا ایتونم اونم از دست دادید مخصوصاً امرو بعد از شهادت عبی عبدالله اینو چگونه نشون دادن اوج رزالت اوج پستی اوج هقارت آقا شما اگر با یه کسی هر دعوا داشته باشید هرچی هم قهر بوشید هرچی هم درگیری داشته باشید زن و بچه مصیبت زده رنج دیده این همه بلا به سرشون آورده رو بعدش با او کار میکنید اجازه بدید یه مقدار از منابع براتون بخونم از خودم نگم میگن که ورویه هلال ابن نافع قال انی لواقف مع اصحاب عمر ابن سعد میگه من حلال ابن نافه از گروه دشمنه میگه با اصحاب عمر سعد ایستاده بودم یه دفعه ندا دادن که ایوه الامیر به شما بشارت میدیم فهازا شمر قد قتل الحسین و این شمره که کار حسین رو تمام کرد حسین رو کشت فخرجت تو بین سفین و وقف تو علیه من از بین دو گروه جدا شدم اومدم جلو استادم و داشتم نگاه میکردم این نقطه خیلی جالبه میگه و والله به خدا قسم ما رأی قط قطیلن من هیچ کشته ای رو ندیدم انقدر چهره شاداب نورانی و با یک نگاه اونچنان ولا انور و وجهن ولقد نور و وجهی و جمال و حیبتهی ام الفکرت فی قتله میگه وقتی سر حسین رو بریده بود شمر گرفت آورد اینجوری که بشارت بده به عمر سعد من کار حسین رو تمام کردم من کنار عمر سعد استاده بودم اون چنان وقار نورانیت حیبت و عظمت از این سر بریده ساطع بود که من اصلا محو تماشای سر حسین بودم و یادم رفت اصلا که حسین رو کشتن توجه این معنا پیدا توجه به این معنا اصلا نداشتم خب خود اونها در این جهت این عظمت رو میگه, میگه سمم اقبلو علا سلب الحسین سر بریدن آوردن بدن افتاده تو قتلگاه بدنی که اینجا میگه امام بقال صادق علیه السلام امام حسین امام صادق علیه السلام فرمودن به امام حسین سلاس و سلاسون فعنه و اربع تو و سلاسون از سی و سه نیزه به بدنش زده بودن سی و چهار جای شمشیر سی و نیزه آقا به یه بدن سی وسه سه نیزه بزنی چی باقی میمونه و سی و چهار شمشیر بزنی این مردم پس بعد از جدایی سر حسین رفتن تو گودال قتلگاه لباس رو بدوزن با این وز بدنی که لباسهایی که سی سه نیزه خورده و سی و چهار شمشی چقدر پست و بدون آزادی لباسها رو بردن بدن حسین و گذاشتن دیدن انگشتر به دست حسینه حوصله نکردن انگشتر رو در بیارن انگوشت رو بریدن این مردم دین دارن این مردم معاد براشون مطرحه این مردم آزادگی بوی بردن میگه اومدن لباس رو امامه و کلای آقا و پیرهن آقا اینا رو یکی یک اکی اسم میبره کی برد کی برد؟ قاله سمه اخرجون نسا امنال خیمه و اشعلو نار بعد هجوم آوردن زنا رو از خیمه ها بیرون کردن و اشعلو فیهان نار شوله های نار رو تو خیمهها برافروختن. فخرجن هواسر مسلبات، هافیات، باکیات این زنها فریاد زننده، گریه کننده، نعره كشنده تو بیابونها میرفتن فوالله لا انسي زینب بنت علی میگه به خدا قسم حال زینب رو فراموش نمی کنم وحیتند بلحسین و تنادا او برای حسین گریه می کرد و تنادا ندادر در داد به صوت حزین و قلبن کعیب با یک صدای بسیار حزننگیست با یک قلب بسیار دردمن و چی میگفت میگفت و محمد صلی الله علیه و الی ک مالک السما ها حسینن مرملن بدما بد مقطع الاعضاء و بناتو که سبایا الاله المشتکا میگه یا رسول الله این حسین توست که کشته تو که کشت توی ای سهر ا فداده زن و بچهاشو اسیر بردن و این و بچه رو اسیر کردن بدنش به خون آقشته شده ای خدا به تو شکایت میکنم بعد فرمود هازا حسینان مجزوز و رأس من غفا یا جده این حسینی که سرشو از پشت سر بریدن مسلوب الامامت و ردا امامشو بردن لباساشو از تنش بردن به عبی اینجا رو دقت کنید جانم فدایت زینب موقعی که خیمه ها شعله می کشه بچه ها تو بیابون پراکنده شدن زینب داره اعلام می کنه. این حسین است یا رسول الله که اینگونه با او عمل کردن به ابی من اسگرهو فی یوم الاثنین نه پدر مادرم فدای اون کسی که خیمه رو دوشنبه غارت کردن اه؟ آشورا جمعه بوده آشورای شستیه که اجری جمعه است قروب جمعه حسین رو کشتن اومدن خیمه ها رو آتش زدن این موقع ها زینب تو بیابونای کربلا داره داد میزنه بچه رو جمع کنه بعد میگه پدر مادرم فدای اون که خیمه ها شد دوشنبه آتش زدن میدونید یعنی که سقیفه بنی ساعده روز دوشنبه تشکیل شد میگه اون روزی که سقیفه درست کردن علی رو کنار زدن خانه زهرا را آتش زدن امروزم خیمه بچه های زهرا را آتش میزدن. به ابی من فستات و ارا پدرم فدای اون کسی بشه که خیمه بریان کردن به ابی من لا و قائبون فیرتجا زینب داره نوع سرایی میکنه شب بابام فدای اون مظلومی بشود که دیگه امید بازگشتشو ندارم میگه میگفت و گریه میکد ارعی تو فی بعض الكتب ان فاطمه از آدت میگه فاطمه سقرا نقل میکنه کنتو تون به بابل الخیمه من در خیمه ایستاده بودم و انا انظر و الى ابی و اصحابی داشتم نگاه میکردم کربلا رفتید تل زینبیه تا حرم امام حسین این فضا چقدره اون قسمت خیام بیت بوده اینجا مقل... تل و جایی که بدنها افتاده لذا امکان دیدن کاملا بوده میگه در خیمه ایستاده بودم داشتم بابامو با اصحابش مجززین کل ازاهی الرمال رمال بدنهای بی سرشون تو این ماسه ها و خاک ها میدیدم ول خیول و اجسادهم تجول میدیدم اسبها دارن رو بدن اینا جولان میدن میرن و میان و انه و من افکر و فی ما یقع و علینا بعد ابی من داشتم فکر می کردم بعد از این با ما می خواهیم چه کار کنن من بنی اومیه از بنی اومیه چه به ما میرسه؟ اید طلون انا او یعصرون انا آیا میان همه ما رو میکشن آیا میان ما رو اسیر میکنن در فعضا رجلن رجل علا زهر جواده یسوق نصاب کعب رمه دیدم یکی سوار مرکب اومد با نیزه به زنها میزند و زنها رو اینور و اونور پراکنده میکند و من دویدم دامن امم زینب رو get off the... اما گفتم همه جان برادرم امام سجاد را دریار میگه یکی رسید به من دید دارم میلرزم همون گونه که سوار مرکب بود دستش رو دراز کرد گوشباره را رو از گوش مرکب گوشم پار شد و خون رو زمین جاری شد یکی دیگه رسید رو سری رو از سرم برداشت سرم و بردم زیر بود بوته خار اومد من از این بوته خار در بیاره گفتم اممه چیزی بده سرم و بپوش این کربلا قروب امروز سر حسین رو از بدن جدا کردن بقیه یه سرا رو نگه داشتن فردا یازده اون برای کوفه اما سر حسین دادن به خولی گفتن سری امشب برو کوفه همین امشب سرو به ابن زیاد بده و بگو کار حسین تموم شد خولی سر حسین و برداش دوان دوان به سرعت اومد با از رسید کوفه دیر شده بود در دارال اماره رو بسته بودن دید شب نمیتونه بره سرو برد خونه خودش صبح بیاره زن شرق شیعی داشت گفت زنم نفهمه دمه در تنوری داشتن تو بس نه که نون میپختن سر حسین امشب انداخت تو تنور در تنور رو گذاشت اومد تو خونه زنش نمیدونه چیه نصف شب زنش باشد نماز شب بخونه دید صدای قرآن میاد اومد تو این وزاق و نوزاق دم دید از دو تنوره در تنور رو بردار دید سر و زیره و یه صدا کنار تنور به گوش میاد میگه بزرم و تنور کرولا <تصفيق> بیره بدن بیزارت رو حشت باهم داد زد زناشی ای خوبه حسین مهمان من